مجموعه مذهبی آبرد گاه اندیشه ها تقدیم کند همینطور که ما از زهبی میاریم تو می‌گی اینا پیغمبر نیستم خب ابن هشام آن پیغمبر نیست چه تو حرف ابن هشام رو قبول دارید؟ درست درست حرف زهبی رو قبول ندارید انفاق، خب انفاقه تواریخه نه خب سند بده سند بده سند من که الان یه دفعه یهو آمدم روی بس. من برای خب، شده خب، تمام مدرد برای شده گوش کن نه نه نه تو چرا گوش کن سند داش بیا آقا من از یه نمیارم روزن من از یکی نمیارم گوش کن برادر از تاریخ میارم از روایت میارم از هر این جایی این کارا بزرت تو جیبت در بزرت تو جیبت بدر نمیخوره اهل بیتم این دوا زهرمن نیستن میگی هم بزر اونایی هم که تو میگی بزار تو جیبت پس اینایی که اینی که تو میگی امام زمان درس کنم امام مثلا از کریه فرزن نداشت اون رو بذار تو جیبه چون به درک نمیخوره آوه. هر درکت دیگه دوابت باید میگه مثل... شما شعور نداره دلوقت. دلوقت. این مثلا پس دلوقت. پس, پس ترسیدی که از امام زهبی بیارم و ثابت بکنم نه نه, نه نداردیدم ولی اتفاق تاریخ اسلام بر اینه که امامی به نام امام زمان وجود نداره این اجما کجاست؟ این اجما رو کی نهاره کرده؟ کتابش رو رو با میارم گفت مالا من یهو آمدم روی بس برای درست بعدی تمان مدلگا باشه مولوی مولوی تو فقط بگو کدوم کتاب اسم کتاب رو بگو اسم کتاب اسم کتاب ابنو حیشان ابنو حیشان سیرش کجاش کجاش کدوم کتاب بس, بس آمدم من که عصم آمارگی یه دفعا نوزه کدام بس نیم آمد بس نیم آمد توحیده استاذ بزرگوار مولوی تو به من بگو در کتاب سیره ابنه هشام از یا یک کتاب دیگرش تو به من ببینید همه که نه تاریخ ابنه هشام اون سیره دیگه تاریخ تاریخ ابنه هشام چشم من, از تاریخ... من تاریخ تاریخ هشام رو باز میکنم اگر این کلام شما در تاریخ ابنه هشام نبود حرفتون رو پس میگیرید و منذرت هایی میکنید من فردا یام. همه مدارک رو من خودم دلیلت من... میدم من الان اینجام من الان خب پس پس یه کاری دیگه کنیم اونی که مدرک نداری رو در موردش حرف نزن اونی که مدرک نداری رو ولش کن ها مدرک من حاضر گوش بکن برادر مولوی صاحب گوش کن من الان جلوت باز میکنم تاریخ ابن هشام رو خوبه گفتم من عزیز دلم گوش اصلا برادر اینا است نبودم آمادگی هم یهو آمدم روی دست برای فردا تمام مدارک و اسناد رو تحویل میدم و هیچ حرفی برای گفتن نخواهی داشت. باشه خب الان الان الان همین همین همین یه قلم رو ثابت بکن همین یه قلم رو. من تاریخ ابن هشام رو باز میکنم تو میگی تاریخ می دیگه درسته؟ تاریخ ابن من اینجا بنویسم. این مسئله شامله. من گفتم فردا من خودم بهت مینم فردا. آها نداری. نیست این دروغه این چه وضعشه؟ نه نه بس ای... بس. من دیدم این مدارک دارم مونده حالا آمده گیم چون یه بس یه دفعه روی بس آمده آقای محترم آقا ابن هشام ایبنی... کتابی به اسم تاریخ اینجا نداره من, داره میزنم. داره. من میزنم من میزنم من میزنم من همچی چیزی نمیاد سیده هشام و تاریخی ابن هشامه دیگه آقا سیره داره سیره داره بله سیره ابن هشام هست اما تاریخش نیست. تاریخ مرتبط نمیجام دیگه من دارم میگم سیرهش میگی نه تاریخشه میگم بابا سیره نه, نه، تاریخ سیره غیر خیلی. خیلی خوب خیلی خوب این سیره ابن هشام بگو ببینم اون کلمه‌ای رو که بعد درش سرچ کنم جوت. رو بگو یک کلمه یک برد. کلمه شمه. ابن هشام با آمادگی کامل حسن اصلی آ شما میدونید این بحثا رو است یه بحث شما بحث بی فایده نیست بس ما اینه آه. که میخوایم دروغ رو ثابت کنیم دروغ رو ثابت کنیم آقای ابن هشام نگاتید جهان تاریخ آه. جهان اسلام متعیدن که امام حسن عسکری فرزند ابن محمد نداشت زمان ایشون هشام اصلا مال زمان پیامبر رو توضیح میده. همین امام عسکری مال 3 قرن بعده این چه جوری این داستان رو اونجا باید نمی کرده من همینو نامشایره باشه بهش ثابت بکنم همین رو می‌خواستم بهش ثابت بکنم که ایشون دروغ میگه چطوری دروغ میگه چون در سیره ابن هشام اصلا در مورد امام حسن عسکری حرف زده نشده اصلا در قصیر. قصیر. در اینو كثير در تاریخ ابن هشام در همه جا بحث شده از اینا ولی گفت من بعضی هم سیره ای... اصلا ابن هشام متوفی چنده اینو به من به گفت متوفی چنده ابن هشام اینو به من بگو جواد وقتی که تاریخ معتبر ما که رس یک لحظه، یک لحظه آقای توکل بر خدا ابن هشام متوفای 216 هست. خوب در ابتدای قرن سوم. برادر گوش کن چرا چرا از خودت علکی حرف درست می‌کنی؟ نه نه دیگه ابتدای قرن, دقه... قرن سبومه چرا دروغ می‌گی؟ گوش خب کن یه دقیقه بابا این کتاب سیره ای ابن هشام این عرض کنم مشخصاتش سیرت و ابن هشام طبع تاها عبدالرعو سر یعنی چابخونهی که اینو پیس کرده القسم السیرت و نبویه. کتاب السیرت و نبویه لابن هشام معلق که عبدالملک ابن هشام بن ایوب الحمیری المعافری ابو محمد جمال الدین متعفای چند؟ دیویست و سیزده امام حسن ارز کنم امام زمان سال چند بدونی اومده 255 این از کجا رفته تو از کجا گفتی این اومده در مورد امام زمان آه، آه. هر سلس. از کجا قب... اینو اینو قبول ندارید شما چه نه نه یه لحظه 40 سال قبل از به دنیا آمدن امام زمان ابن هشام مرده چه جوری تو کتابش از از امام اصلا از قبول ندارم قبول ندارم چش تمام گفتید اینجا چه قبول کنید فاصله بن رزی و امام نهج البلاغه چند سال بوده چند قرن بوده یک یک, یک دقیقه بوده اول حرف منو جواب بده چرا نه نه نه نه بره. نه, نه. لازم کن این خطبه های امام علی را بعد از 300 سال چطور جمعاری کرد شما چرا درو سید رزی، سید رزی تو بهش بگو کافر تو بگو دروغو حتما کاری نذارم من نمیگم میگم کافر میگم شما سختو پردار دست کسانی که از مردم خوز میگنه درو میگن مولوی. بوش کن مولوی، کن آقای مولوی صاحب بوش کن آقای مولوی تو گفتی در سیره ابن ارشام اجماع به اج... گفته اجما برین این هست کو؟ کجا بود؟ چرا دروغ گفتی؟ رفت از یعنی انسان اینقدر دروغ بود خجالت نکه خیلی دروغ بزرگی بود <تصفيق> <تصفيق> یعنی اینقدر آدم میتونه دروغ بود ب...